گفتنی هم کم نیست اگه تو برگردی گفتنی هم ینه قصه می خورا. من دوستداری هم بهم دوست به می خدی همی وقت چشا تو روی من می بندیم هم ازذا میدی هم نگاه اینجا بارون به بار رو عشق چشمام تا نبینه گریه کردم و نبینه غسته میخورم و تنها کردم و نوینه قصه